کتاب داستانها و افسانه‌های مردم ترکیه نوشته ایگناتس کنوس ترجمه پژمان تهرانیان ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سارا سمنانی سلام به همه قصه دوستای عزیز این قصه رو از کانال تلگرامی هزار افسان میشنوید امروز قراره با هم بریم یه سفر دور و دراز البته نه با هواپیما یا نه با قطار بلکه با بال خیال و قصه قصهی که براتون دارم از دل افسانه های قدیمی ترکیه بیرون اومده قصهای به اسم امامه جادو تازیانه جادو و قالیچه جادو از کتابی که بهتون معرفی کردم یه قصه پر از رمز و راز پر از اتفاقای عجیب و یه عمامه و یه تازیانه و یه قالیچه جادو که خب بذارین خودتون بشنوین بریم که با هم قصه رو شروع کنیم روزی روزگاری در زمانی که درش هیچ زمانی وجود نداشت دوتا برادر زندگی می کردن. پدر و مادرشون مرده بودن و مال و منالشونو بین این دو تا پسر تقسیم کرده بودن برادر بزرگتر با سهمش دکانی باز کرده بود اما برادر کچیکتر که عقلش اندازه یه مورچه بود ول میگشت و هیچ کاری نمی کرد. این بود که بالاخره وقتی هرچی داشت و نداشت و خورد و نوشید و ولگشت روزی رسید که دیگه حتی یه سکه هم تو جیبش نمونده بود این بود که به سراغ برادر بزرگتر رفت و التماسش کرد که یکی دو تا سکه بهش بده دوباره وقتی اون یکی دو سکه هم تموم شد برگشت بیش برادرش و باز ازش سکه خواست زندگیش به همین منوال با صدق سریه برادرش داشت میگذشت تا اینکه کار به جایی رسید که برادر بزرگتر از اینکه این همه به این برادر داره پول میده جونش به لبش رسید وقتی دید از دست برادر کوچیکترش نمیتونه خلاص بشه تمام داراییش و فروخت و تبدیل کرد به سکه و رفت سوار کشتی شد و تصمیم گرفت وطنش رو ترک کنه اما، اما خبر نداشت که برادر کچکتر شستش خبردار شده بود. قبل از اینکه کشتی به راه بیفته، برادر کچکتر هم خودش رو انداخت توی کشتی و همراه اون برادر به راه افتاد. برادر بزرگتر تا وقتی که بادبانه رو نداده بودن بالا و کشتی حرکت نکرده بود، روی عرشه کشتی نمی اومد که مباد و برادرش از جایی ببیندش و همراهش بیاد حالا قافل از اینکه برادر کوچکترم توی کشتی بوده وقتی کشتی راه افتاد برادر بزرگتر اومد روی عرشه و دو برادر همدیگر را دیدن اما برادر بزرگتر اصلاً به روی خودش نیاورد که از دیدن برادر کوچیکتر عصبانی شده چون میدونست که عصبانی شدن هیچ فایده ای نداره. اونم وقتی که میدونست کشتی تا رسیدن به مصر هیچ جا توقف نمیکرد. به مصر که رسیدن برادر بزرگتر به برادر کوچکتر گفت تو همینجا بمون تا من برم دوتا قاطر پیدا کنم تا با اونا راهمونو ادامه بدیم. برادر کچکترم کنار ساحل نشست و منتظر برادرش شد. اما هرچی انتظار کشید بیفایده بود. با خودش فکر کرد بهتره برم دنبالش بگردم و از جاش بلند شد و رفت تا به دنبال برادرش بگردم رفت و رفت و رفت و راه های کوتاه و بلند و طی کرد. شش ماه در حال عبور از مزرع بود اما به محض اینکه سرش رو بر می و به پشتش نگاه می کرد، میفهمید که با اون همه راهی که رفته به اندازه یه بند انگشتم از جاش تکون نخورده. پس رفت و رفت و شش ماهی رو بیوقفه با قدم های بلند در راه بود. می رفت و به نفشه ها رو می چید و شاد و سر خوش به پیش می رفت تا اینکه به تپی رسید اونجا سه تا جوون رو دید که سر یه چیزی دارن با هم دعوا کنن فورا بهشون نزدیک شد و ازشون پرسید که دعواشون سر چیه؟ برادر کوچیکتر بهش گفت ما سه تا برادریم از یه پدر پدرمون به تازگی مرده و سه تا چیز برامون به ارث گذاشته یه امامه، یه تازیانه و یه قالیچه خاصیت امامه اینه که هر کی اونو روی سرش بذاره میتونه از جلوی چشم هر بنی آدمی ناپدید بشه هر کس هم که روی قالیچه بشینه و یه بار بهش تازیانه بزنه میتونه مثل پرنده ها تا هر کجا که میخواد پرواز کنه حالا دعوای ما سر اینه که کی امامه رو برداره کی تازیانه رو برداره و کی قالیچه رو برداره و همون موقع هر ستا با هم فریاد زدن که این ستا باید مال یه نفر باشه یکیشون گفت اینه باید مال من باشه چون من از همه بزرگترم دومی فریاد کشید حق منه که صاحبشون بشم چون برادر وسطیم سومی گفت اوه این مال منه چون من تحت و چیزی نگذشت که کارشون به دعوا و کتککاری کشید. جوون گفت با این وضع که شما به جایی نمیرسین الان میگم که چی کار کنین. من با این تیکه چوب کوچیک یه تیری درست میکنم و اونو پرتاب میکنم. شما به دنبال تیر میرین و هر کدومتون که زودتر از همه تیر رو پیدا کرد و پیش من آورد همه میراث پدر رو صاحب میشه. جوون تیر رو توی کمان گذاشت و به پرواز در آورد و به دنبال اون سه برادر از جا کنده شدن و به دنبال تیر رفتن اما اما این جوون زیرک یه نیرنگی به کار برد که عقل منم بهش نمیرسید اما مرا گذاشت رو سرش روی قالیچه نشست و یه بار بهش تازیانه زد و فریاد کشید هی hey, برو منو ببر پیش برادر بزرگترم و قالیچه راه افتاد تا به خودش اومد دید شهر بزرگی زیر پاشه هنوز چند قدمی توی شهر راه نرفته بود که قاصد دربار از راه رسید و به همه مردم شهر اعلام کرد که دختر پادشاه هر شب از قصر ناپدید میشه هر کی بتونه سر از کارش در بیاره دختر و نیمی از قلم پادشاهی رو پاداش میگیره جوون داد زد من میتونم من پیش پادشاه ببرید و اگه نتونستم، بدید سر از تنم جدا کنن. پسر جوون ابله رو به قصر بردن. شب که شد، دختر پادشاه دراز کشیده بود و با چشمای نیمه باز همه چیزو زیر نظر داشت. دختر که فقط منتظر این بود که جوون به خواب بره، سوزنی تو پای خودش فرو کرد، شم و برداشت تا مبادا جوون از خواب بیدار بشه، و از در کناری بیرون رفت جوان توی یه چشم به هم زدن اما رو رو سرش گذاشت و هنوز از همون در بیرون نرفته بود که دیو سیاهی رو دید با سپری از طلا روی سرش دختر پادشاه روی سپر نشست و اون دوتا آماده رفتن شدن اما جوان اون قطرها هم ابله نبود که خیال کنه میتونه تک و تنها از پس اونا بر بیاد پس خودش هم روی سپر پرید و با این کار تقریبا اون دوتا رو واژگون کرد دیو که خطری رو احساس کرده بود دختر رو قسم داد که بهش بگه داره چی کار میکنه آخی دیگه واقعا در یک قدمی سقوط بودن دختر گفت من اصلا تکون نخوردم سر جام روی سپر نشستم و دیو سیاه هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بود که احساس کرد سپر زیاده از حد سنگین شده امامه که اون جوان رو سرش گذاشته بود خود به خود اونو نامری کرده بود و کسی نمیتونست ببینتش دیو متعجب از دختر پرسید بانوی من امروز خیلی شما سنگین شدین کمرم زیر بار شما راست نمیشه دختر جواب داد تو اصلا امشب مثل همیشه نیستی عزیز جان من که با دیشبم فرقی نکردم دیو سیاه سری تکندد و به راهش ادامه داد رفتن و رفتن تا به باقی رسیدن که زیبایی شگفتانگیزی داشت درختاش همه از نقره و الماس بود جوان شاخه کوچیکی کند و توی جیبش گذاشت و در همون وقت درختا بنا کردن به ناله و زاری میگفتند آدمی آدمیزادی اینجاست که ما رو شککنجه میکنه. آدمیزادی اینجاست که داره ما رو شکنجه میده. دیو و دختر نگاهی به هم انداختند دختر گفت: « امروز اونا جوانکی رو پی من فرستادن شاید روح اونه که داره ما رو تعقیب میکنه. اونو بزن به راهشون ادامه دادن تا اینکه یه باغ دیگه رسیدن. باقی که سراسرش از طلا و سنگای قیمتی بود. جوون اونجا هم شاخه کوچکی کند و اونو در جیبش گذاشت. لحظه بعد آسمون و زمین به لرزه در اومدن و صدای خشخشی از درختان بلند شد که میگفتند. آدمی زادی اینجاست که ما رو شکنجه میده. آدمی زادی اینجاست که ما رو شکنجه میده. جوون و دختر هر دو از ترس از روی سپر پایین پریدن حتی دیوم نمیتونست بفهمه که چه خبره بعد رسیدن به یه پولی که اون سوی پل قصر پریام بود اونجا تعداد زیادی قلام در انتظار اون دختر بودن و با دستایی که صاف کنارشون گذاشته بودن پیش روی دختر سر تعظیم فرود می آوردن طوری که پیشونیشون به زمین میخورد. دختر پادشاه از روی سر دیو پایین اومد و جوونم هم به همراه اون پایین پرید برای شاهزاده خانوم یه جفت نعلین آوردند که از الماس و سنگهای قیمتی پوشیده شده بود جوون هم یکی از لنگه های اونو قاپید و توی جیبش گذاشت دختر یکی از لنگه ها رو پوشید و هرچی گشت لنگه دیگه شو پیدا نکرد پس یه جفت دیگه خواست که براش بیارن اما به محض رسیدن اون یکی جفت باز یکی از لنگه ها ناپدید شد. دختر به قدری رنجیده بود که بدون نعلین به راهش ادامه داد. اما جوون با امامه بر سرش و تازیانه و قالیچه در دستش مثل سایه هر جایی که دختر رفت دنبالش رفت. دختر پیشاپیش پیش می رفت و جوون هم دنبالش وارد اتاقی شد. اونجا مرد سیاه پوستی رو دید از سرزمین پریان که یکی از لبهاش به آسمون می رسید و لب دیگش روی زمین کشیده می شد. با قذب از دختر پرسید که این همه وقت کجا بوده و چرا زودتر نیومده؟ دختر ماجرای اومدن جوون رو در شب قبل و اتفاقاتی رو که در راه براشون افتاده بود تعریف کرد. اما مرد خیال دختر رو راحت کرد و بهش گفت همه چیزایی که دیدی و شنیدی خواب و خیال بوده. دیگه هیچ جایی برای نگرانی نیست. بعد دختر رو کنار خودش نشوند و به یکی از غلامان فرمان داد که شربت بیارن. قلامی سیاه؟ شربت نابی آورد در جام زیبا از الماس اما همون لحظه که جام رو به طرف دختر پادشاه گرفته بود جوون نامرئی با حرکتی سریع دست قلام رو گرفت و افتاد و جام شربت تیکه تیکه شد جوون تیکه ای از جام رو هم در جیبش پنهون کرد دختر پادشاه فریاد زد نگفتم کاسه ای زیر نیم کاسه است، نه شربت میخوام، نه هیچ چیز دیگه، بهتر هرچی زودتر از اینجا برم. دیو گفت آروم؟ آروم؟ و به قلامان دیگه امر کرد که چیزی برای خوردن بیارن. پس اونا میز کوچکی آوردند و انواع غذاها رو روی اون چیدن و, و دیو و دختر مشغول خوردن شدند. اما جوون گرسنه بیکار ننش از دو چیزی نگذشته بود که هرچه خوراکی بود ناپدید شد انگار که نفر سومی هم در کار خوردن بود و حالا دیگه مرد سیاه پریانی هم تا حدی کاسه صبرش لبریز شده بود چون که گذشته از غذا قاشق و چنگالام در حال ناپدید شدن بودند پس مرد به محبوبش گفت که شاید بهتر باشه تا دیر نشده به خونه برگرده و قبل از خداحافظی خواست که دختر رو ببوسه. اما جوان بین اون دوتا خزید و اونا رو از هم جدا کرد. یکی رو به سمت راست پرت شد و دیگری به سمت چپ. هر دو با رنگ و روی پریده از جا بلند شدند. دیو سیاه رو با سپرش صدا زدن و دختر روی سپر نشست و به راه افتادن. اما جوون شمشیری را از دیوار بیرون کشید و از غلاف بیرون آورد. آستین بالا زد و با یه ضربه سر مرد سیاه پریان رو از تن جدا کرد. و سر هنوز به روی زمین نقلتیده بود که آسمان ها با صدایی سهمگین به قررش در اومدن و زمین از ته دل به ناله افتاد و صدای بلند به آسمان رفت که وای بر ما آدمی زادی سرورمان را به هلاکت رساند جوون که از ترس زهر ترک شده بود هاجواج مونده بود که چی کار کنه قالیچه را محکم چسبید روش نشست تا زیانه بهش زد و وقتی دختر پادشاه به قصر رسید دید که جوون تو اتاق خودش در حال خور رو پفه دختر به حالتی شیطانی فریاد کشید ای کچل شرور امشب چه ها که نکشیدم و تو هم بدتر از من بعد یه سوزن در آورد و به پاشنه پای جوان فرو کرد و وقتی دید جوان هیچ اکسال عملی از خودش نشون نمیده مطمئن شد که جوان خوابه و خودش هم رفت تا بخوابه صبح روز بعد دختر از خواب برخاست و به جوان دستور داد که خودش رو برای مردن آماده کنه چون که اجلش فرا رسیده جوان جواب داد من با تو کاری ندارم بیا با هم بریم پیش پادشاه جوون رو پیش پادشاه بردن اما جوون گفت از اتفاقات شب قبل هیچ کلمه ای به زبون نمیاره مگر اینکه همه مردم شهر رو خبر کنن با خودش فکر کرد شاید از این را بتونم برادرم رو هم پیدا کنم جارچیا توی شهر جار زدن و همه مردم شهر رو دور هم جمع کردن و جوون کنار پادشاه و همسرش روی شاهنشین نشست و ماجرای شب گذشته را تمام و کمال تعریف کرد. از سپر دیف گرفته تا شاه پریان. دختر که از فرت ترس و هیجان زبانش به لکنت افتاده بود گفت: "سرورم، پدر بزرگوارم. حرفای اونو باور نکنین. دروغ میگه. سرورم دروغ میگه. اما در همون حال، جوان، شاخه علماس نشان، شاخه جواهر نشان، نعلین طلو و قاشق و چنگالای قیمتی رو از جیبش بیرون آورد و میخواست از مرگ مرد سیاه پریانی بگه که یهو چشمش توی جمعیت افتاد به برادر بزرگترش مدتهای مدیدی بود که دنبالش میگشت دیگه حواسش به هیچی نبود جز اینکه از شاه نشین بیاد پایین و راهش را از میون جمعیت باز کنه و به برادرش برسه. برادرش هم در حال اومدن به سمت برادر کوچیکترش بود. اون دو تا برادر همدیگر رو در آغوش گرفتن و داشتن از سرگذشتشون برای هم میگفتن. برادر کچیکتر به پادشاه التماس کرد که دخترش و نیمی از قلم روش رو به برادر بزرگترش بده. خودش هم به همون اماام جادو و تازیانه جادو و قالیچه جادو قانع بود و تا دم مرگ چیز دیگه ای نمیخواست، جز اینکه کنار برادر بزرگترش باشه. اما اما بشنوید از دختر پادشاه که از همه بیشتر از مرگ پادشاه پریان خوشحال شده بود. سرگذشتش اینطوری بوده که یه روز، به زور از اتاقش بیرون برده بودن و و با سحر و جادو کاری کرده بودند که اون دختر توان رها ساختن خودش را از دست شاه پریان پیدا نکرده بود دختر با شادمانی رضایت داد که به همسری برادر بزرگتر در بیاد زیافت با شکوهی برپا کردن و چهل روز و چهل شب جشن عروسی گرفتند و این بود قصه امامه جادو، تازیانه جادو و قالیچه جادو قصه که فقط درباره جادو نبود بلکه درباره دلهایی بود که حتی اگر راهشون از هم جدا بشه باز بازم یه روزی یه جایی همدیگر رو پیدا میکنن امیدوارم این قصه دلتون رو گرم کرده باشه اگه شما هم کسی رو دارین که مدت هست ازش دورین شاید وقتشه یه نشونه بفرستین شاید یه روزی درست مثل قصه جادوی زندگی دوباره شما رو کنار هم بیاره حالا قصه چطور بود؟ از این سفر کوتاه به دل افثانه های ترکیه لذت بردین؟ اگه دوست داشتین حتما برامون بنویسین که از کجای دنیا قصه هامون گوش میدین و کدوم بخش قصه بیشتر به دلتون نشست تا قصه بعدی دلتون گرم لبتون خندون و دنیاتون پر از جادوهای خوب خدا نگهدار